عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش اومدیم. زمن بررسی کتاب مقدس به انبیا در عهد قدیم رسیدیم. در درس امروز یونس نبی رو بررسی خواهیم کرد که یکی از معروفترین انبیای کوچک است. چیزهای زیادی بیش از فقط داستان مردی که توسط یک ماهی بزرگ بلیده شد در این کتاب کوچک است که میتونیم یاد بگیریم. بیایید از خدا بخوایم که قلب‌ها و افکار ما رو باز کنه تا ببینیم او امروز میخواد چی به ما یاد بده. بیایید در این درس حیجان انگیز با معلممون همراه بشیم تا ببینیم خدا میخواد امروز به ما چی یاد بده. دانشجویان عزیز سلام ضمن بررسی کتاب مقدس به کتاب یونس نبی رسیدیم. گوش کنید ببینید کتاب یونس نبی چطور شروع میشه. یک روز خداوند به یونس پسر امیتای فرمود به نینوا شهر بزرگ برو و به مردم آنجا بگو که ظلم و شرارت آنها به پیشگاه من رسیده است. اما یونس ترسید و از حضور خداوند فرار کرد. او به بندر یافا رفت و کشتی پیدا کرد که به سمت ترشیش می بلیط خرید سوار کشتی شد و به انبار تاریک کشتی رفت و از نظر خداوند مخفی شد. اما وقتی کشتی به راه افتاد ناگهان خدا باد وحشتناکی بر دریا فرستاد که سبب طوفان بزرگی شد که هر آن با خطر غرق شدن مواجه بودند ملوانان بیچاره از ترس جانشون نزد خدایان خودشون ناله میکردند و برای سبک کردن کشتی هر چیزی رو به دریا مینداختند در تمام این مدت یونس بی سر و صدا اون پایین خوابیده بود ناخدا به سراغ او رفت و بر سر او فریاد زد که چی کار داری میکنی؟ در چنین موقعیتی وقت خوابه؟ بلند شو و نزد خدای خودت ناله کن، شاید او رحم کنه و ما رو نجات بده. شاید او تصمیم بگیره و ببینه چه کسی خدایان رو آزرده کرده که سبب چنین طوفان وحشتناکی شده. یونس با اونا گفت، تمامی این بلاها به خاطر منه. اونا پرسیدن تو چی کار کردی که باعث چنین طوفان وحشتناکی شده؟ تو کی هستی؟ شغلت چیه اهل کدوم کشوری از کدوم قوم هستی؟ او گفت من یهودی هستم، رو میپرستم، خدای آسمانها که زمین و دریا رو خلق کرده بعد به اونها گفت که من از حضور خدا فرار میکنم ملوانان وقتی این رو شنیدن خیلی وحشت زده شدن و پرسیدند چرا این کار رو کردی؟ حالا باید چیکار بکنیم که این طوفان متوقف بشه؟ طوفان هر لحظه بدتر و بدتر میشد یونس گفت راهش اینه که منو به دریا بندازید تا دریا آروم بشه چون میدونم که این طوفان وحشتناک به خاطر منه اونها سخت تلاش میکردند که کشتی رو به ساحل برسونند اما نمیتونستند طوفان بسیار سخت بود و مانع اونها می میشد بعد اونها دعایی به حضور یهوه خدای یونس کردند ای یهوه نزار به خاطر گناه این مرد بمیریم و ما را به خاطر مرگ او مسئول ندون و ما رو به خاطر مرگ او مسئول ندون چون این تقصیر ما نیست تو به دلایلی که خودت میدونی این طوفان رو به خاطر او فرستادی و بعد از اون اونا یونس رو گرفتند و به درون امواج دریا انداختن بلافاصله طوفان متوقف شد مردان اونجا با ترس در مقابل یهوه ایستادن و برای او قربانی کردند و قسم خوردند که او رو خدمت کنن حالا خدا ماهی بزرگی فرستاد که یونس رو بلعید و یونس سه شبانه روز در شکم ماهی بود هر بار که شما نام یونس رو میشنوید بلافاصله میخواید روی چیزی که محور داستان یونس هست بحث کنید بحث معمولا بر سر این مطلب کوتاه هست. آیا واقعا باور میکنید که یک ماهی یونس رو بلعیده باشه آیا واقعا باور میکنید که سه شبانه روز در شکم ماهی زندگی میکرده؟ آیا عملاً این داستان رو میپذیرید؟ آیا مفهوم داستان همین چیزی هست که میگه؟ من بحثای زیادی مثل این رو شنیدم، گاهی، گاهی بحث‌های اینطور ادامه پیدا میکنن. کسی که خیلی خیلی کاره، قطعا اعتقاد داره که داستان باید داستانی واقعی باشه. من خیلی شنیدم که مردم میگن گوش کن، اگه خدا میتونه گناهکاری مثل من رو نجات بده، پس به کلام خدا باور میکنم که حتی میگه یونس توسط نهنگ بلعیده شد. من استدلالهای اینجوری زیادی رو شنیدم. شکی نیست که نجات ما چیزی فراتر از یک معجزه هست. حتی موجزه ای که در کتاب یونس شرط داده شده پس وقتی کتاب یونس رو نگاه می‌کنیم بیایید ها بر سر مسائل ادبی این کتاب نبوتی رو کنار بذاریم وقتی به این کتاب از کتاب‌های مقدس می‌رسیم بارها و بارها گفتم چیزی که باید دنبالش باشیم اینه چه حقیقتی در این کتاب تعلیم داده شده کاربرد عملی اون حقیقت در زندگی‌های ما چیه چرا ریش سفیدان شورای کانون تصمیم گرفتند که این کتاب در کتاب مقدس باشه این کتاب به من چی میگه؟ هر کدوم از کتاب های کتاب مقدس مطالب زیادی برای گفتن به من و شما داره خدا چه چیزی برای گفتن به من و شما توی این کتاب داره؟ چیزی که خدا توسط کتاب یونس به من و شما میگه ارتباط خیلی کمی به بلعیده شدن انسان توسط ماهی داره وقتی ما حقیقت کاربرد عملی و شخصی کتاب یونس رو که خدا میخواد به ما نشون بده ببینیم این رو خواهیم فهمید. عیسی مسیح در باب هفده انجیل یوحنا به ما نشون داده که چطور به همه کتاب‌های کتاب مقدس نزدیک بشیم. در آیه 17 همون باب عیسی میگه کلام تو حقیقت هست. حالا بذارید اون در ذهن شما نفوذ کنه و در قلب شما حک بشه. کلام خدا حقیقته. وقتی مردم از ایسا می می‌پرسیدند که از کجا بفهمند که تعالیم او هم مانند تعالیم دیگر علمای یهودی نیست، بلکه همونطور که ایسا ادعا می‌کنه کلام خدا خطاب به انسان هست وقتی اونها از عیسی پرسیدند چطور این رو بفهمند؟ عیسی در باب هفت آیه 17 گفت کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد، خواهد دانست که تعالیم من از جانب خداست یا از جانب خود سخن می‌گویم. وقتی این دعایه یوحنا 17-17 و 7-17 رو کنار هم قرار بدید، طرز نگرش به کتاب مقدس رو خواهید فهمید که میگه به کتاب مقدس طوری نزدیک بشید که دنبال حقایق باشید و قلباً تصمیم بگیرید که وقتی خدا حقیقتش را از کتاب مقدس به شما نشون میده، اون حقیقت رو در زندگی شخصیتون بپذیرید و از اون اطاعت کنید. به قول ایسا، اینگونه میتونیم بفهمیم که کلام خدا کلام خداست. اگه میخواید ثابت کنید که کتاب مقدس کتابی الهامی است به نام گفته ی عیسی لازم نیست که به دانشکده برید و باستانشناسی و زبان سامی و فرهنگ ها رو مطالعه کنید من برای تحقیقات اهمیت زیادی قائل هستم اما به هر حال تحقیقات الزامن کسی رو متقاعد نمیکنه که کتاب مقدس کلام خداست عیسی کاملا عملی کاربوردی فکر میکرد وقتی میگفت اگر میخواهید بدونید تعالیم من کلام خداست از تعالیم من دنبال حقیقت بگردید و تصمیم بگیرید وقتی خدا حقیقت رو نشونتون داد اون رو در زندگی خودتون بپذیرید و از اون اطاعت کنید عیسی به ما میگه که استفاده از حقیقت اطمینان قطعی از این حقیقت رو به ما میده که تعالیم او کلام خداست من اعتقاد دارم که میتونیم این طرز نگرش عیسی رو به تعالیم خودش و تمامی کتابهای مقدس به کار بگیریم مایلم که با همین طرز نگرش ایسا به بررسی کتاب یونس بپردازیم. در کتاب یونس دنبال حقیقت بگردیم. قلبن تصمیم بگیریم که وقتی خدا حقیقت رو در کتاب یونس نشون میده، اون حقیقت رو در زندگیمون بکار بگیریم. اگر اینگونه به کتاب یونس نزدیک بشید، ایمان دارم که وقتی کتاب یونس رو تموم میکنید، با این ایمان که کتاب یونس کلام خداست، اون رو تموم خواهید کرد. حیقام کتاب یونس چیه؟ کتاب یونس یکی از اون کتاب های نبوتی هست که بدون دادن هیچ واقعه تاریخی شروع میشه. یادتونه که وقتی بررسی کتاب های نبوتی رو شروع کردیم، از سقوط چهار شهر صحبت کردیم. چهار شهری که در طی تاریخ قوم یهود، پایتخت های شمال، جنوب و پایتخت دشمنان اونها بودن. سامره پایتخت پادشاهی شمال بود که توسط آشوری ها سقوط کرد، اورشلیم پایتخت پادشاهی جنوب بود که توسط بابلیها سقوط کرد، حالا این دو شهری که در تاریخ یهود سقوط کردند و یکی از موضوعات موعضه انبیا بودند مخصوصاً انبیای کوچک پایتخت دشمنان اونها بودند بابل که پایتخت دشمن پادشاهی جنوب بود و نینوا که پایتخت آشوریها دشمن پادشاهی شمال بود وقتی به کتاب ناهوم برسیم در مورد سقوط نینوا خواهیم خوند ناحوم نابودی نینوا را نبوت و پیش کرده بود شهر نینوا به طور کل نابود شد و داوری خدا به طور کامل بر اون قرار گرفت یونس احتمالاً 130 سال قبل از ناحوم نبوت کرده. 130 سال قبل از نابودی نینوا یونس از طرف خدا مأموریت یافت که به شهر نینوا بره و برای اون شهر توبه و موعظه کنه پیغامی که یونس باید برای مردم نینوا می کرد این بود که داوری خدا میآید این تقریبا همون پیغامیه که آموس و دیگر انبیا هم در اسرائیل و یهودا موعظه کردند داوری خدا میآید به هر حال در اون پیغام اینطور اومده که اگر توبه کنند خدا وعده داده که داوریش رو به تعویق خواهد انداخت یونس خدا رو خوب میشناخت یونس میدونه از خدا چه جور خدایی هست یونس شخصیت خدا رو می شناسه وقتی خدا به یونس معموریت میده به نینوا بره و توبار برای مردم نینوا کنه، یونس میخواد و امیدواره که نینوا نابود بشه و داوری خدا بر اون بیاد به هر حال یونس میدونست که اگر اهل نینوا توبه کنن نابود نخواهند شد یونس ایمان داره که خدا میتونه نینوا رو وادار به توبه کنه در پایان داستان یونس شرط داده شده که شهر نینوا 120 هزار نفر جمعیت داشته که دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدادن بعضی از محققین معتقدن که در شهر نینوا سد و هزار نفری که دست چپ و راستشون رو نمیشناختن کودکان بودن اونها فرزندان بودند ها بودن حال کل جمعیت شهر نینوا شاید چیزی در حدود یک یا دو میلیون نفر بوده نینوا شهر بزرگی بود وقتی کتاب ناهوم نبی رو بررسی کنیم بیشتر در مورد نینوا خواهیم خون نینوا خیلی شبیه شهر بابل بود وقتی کتاب دانیال رو بررسی می کردیم یادتونه که سیمای شهر بابل رو برای شما ترسیم کردم ما در عظمت این شهرها اقراق نکردیم همینطور در مورد گناهان و شرارت این شهرها هم اقراق نکردیم آشوری ها شهروندان نینوا قطعاً مردمان ظالمی بودن شرارتی که آشوری ها مرتکب می شدند در تاریخ باستان بی سابقه بود آشوری زنده زنده زند پوست و سرای خود رو می اونها بر بینی و اسرا قلاب وست میکردن و اونها را به دنبال اسبها ها وقتی آشوری ها بر شهری غلبه میکردن، نیمی از مردم شهر رو قتل آم میکردن و گردن اونها رو میزدن و سرهای اونها رو برای روب و وحشت بر دروازه ها آویزون میکردن. اونها بدون اقراق بیرحم بودند بیدادگری آشوری ها زمینه که در اون خدا یکی از زیباترین جواهراتش رو قرار داد. پیام کتاب یونس هم مانند یوشا درباره محبت خداست. بسیاری از مردم توقع ندارند در کتاب‌های انبیا پیام محبت خدا را پیدا کنند. کتاب یونس با ما در مورد نبی صحبت میکنه که خدا به او ماموریت داد که بره و پیغام توبه و نجات را برای دشمنانش موعظه کنه. این نبی اونقدر در مورد خدا آگاهی داره، اونقدر از شخصیت و قدرت خدا خبر داره که ایمان داره اگر به ماموریت خدا پاسخ مثبت بده، شهر نینوا توبه خواهد کرد و مردم نینوا نجات خواهند یافت. در باب چهار این کتاب کوچک نبوتی، یونس دقیقا به خدا میگه که چرا نمیخواست به نینوا بره و موعظه کنه. یونس به خدا میگه به نینوا نمیرفت و موعظه نمیکرد، چون میدونست که اگر این کار رو بکنه، مردم نینوا نجات خواهند یافت. خدا یونس نبی رو دعوت میکنه که بره و برای دشمنانش موعظه کنه. بنابراین یکی از پیغام های کتاب یونسینه، دشمنان خودتون رو محبت کنید ما وقتی انبیار رو یکی بعد از دیگری بررسی می می‌بینیم می بینیم که این کتاب ها پر از پیغام های محبت خدا هستند. خدا همیشه خدای محبت بوده او امروز هم خدای محبته و همیشه خدای محبت خواهد بود. محبت تنها مشخصه خدا نیست. خدا همینطور خدای عادل هم هست و چون خدا خدای عادلیه پس چیزی به نام ادالت مطلق وجود داره. خدا نقش‌های مختلفی ایفا می‌کنه. به عنوان پدر مهربان گاهی محبت ابراز می‌کنه. به عنوان خدای داور گاهی ادالت نشون میده که هیچ مقایرتی با محبت او نداره. این پیغام کتاب یونس هست. خدا به این نبی مأموریت داد و به او گفت یونس دشمنانت رو محبت کن. برو و برای نینوا معذه کن. وقتی خدا به یونس معموریت داد که نجات رو برای نینوا معایزه کنه پاسخ یونس این بود من به نینوا نخواهم رفت وقتی خدا گفت برو یونس گفت نه ما وقتی کتاب مقدس رو بررسی می کردیم در بررسی قوم خدا دیدیم که الگویی در کتاب مقدس هست که میشه به اون آمدن و رفتن قوم خدا گفت این مخصوصا در مورد مردان خدا که به اونها نبی میگیم مستاخ پیدا میکنه. کنه تجربیات زیادی دارند که میشه تحت عنوان تجربیات آمدنشون نزد خدا طبقه بندی کرد انبیا همیشه بعد از تجربه آمدنشون با بحرانهایی مواجه میشن وقتی معموریت پیدا میکنند کنند که برند اونها با تجربیاتی مواجه میشن که میشه تحت عنوان تجربیات رفتن طبقه بندی کرد انبیا تجربه آمدن به حضور خدا رو دارند که بسیار پرمعنی هست و چون این تجربه اونها پرمعنیه تجربه رفتن اونها برای خدا نیست پرمعنی خواهد بود. بنابراین، رفتن آنها برای خدا مثمر ثمر خواهد بود. در زندگی یونس، شما در نگاه اول در این مورد میبینید که کاملا برعکسه. یونس امین و ثابت قدم هست. یونس میدونه کسانی که به حضور خدا میان، همیشه این فرمان رو خواهند شنید. برو. اما وقتی خدا گفت به نینوا برو، یونس پاسخ داد من نخواهم رفت شما میتونید بالای با به اول کتاب یونس این سه کلمه رو بنویسید من نخواهم رفت یونس به خدا میگه من نخواهم رفت و از اون گذشته به حضور تو هم نخواهم اومد یونس میدونه اگر به حضور خدا بیاد فرمان رفتن رو خواهد شنید پس با صداقت و پشتکار تصمیم میگیره که از حضور خدا فرار کنه او از حضور خدا فرار میکنه شما چی؟ آیا شما هم تا حالا از حضور خدا فرار کردید؟ تا حالا شنیدید که خدا بگه محبت او رو برای دیگران موعظه کنید حتی برای دشمنانتون؟ این یکی از کاربورتای عملی کتاب یونسه. حقایق امیق بسیاری در آیات نخستین کتاب یونس وجود داره. بر اساس باب اول یونس من معتقدم که شما میتونید بفهمید کسانی که واقعا به حضور خدا میان همیشه برای خدا خواهند رفت. برخلاف این هم واقعیت داره میتونید مطمئن باشید کسانی که هرگز برای خدا نمیرند هرگز به طرف خدا نمیاند حقیقت اینه که کسانی که به حضور خدا میاند همیشه به دنبال کار خدا میرند حالا وقتی من صحبت از رفتن میکنم منظورم این نیست که همه باید مبشرین و میسیونرهای خارجی باشند منظورم از رفتن اینه که اونها سمیمانه علاقه دارند که خدا و مسیح را با دیگران در میون بذارن. اونا نزد شای مختلف مردم خواهند رفت و صمیمانه و فعالانه به مردم کمک خواهند کرد و علاقمند خواهند بود و تنها دستی خواهند بود که عیسی داره و بخشی از بدن او خواهند شد. وقتی شما یک شخص آماده رفتن باشید، اون موقع شما کانال انتقال محبت مسیح خواهید شد. اون موقع او تمام محبتش رو توسط زندگی شما جاری میکنه، و درد مردم دردمند رو رفت می میکنه منظور من از رفتن اینه بعضی ها هرگز نمیرند کلمه بشارت کلمه زیبایی هست این کلمه نشون میده که ما موظفیم که بریم ماموریت بزرگ در انتهای هر چهار انجیل و در ابتدای کتاب اعمال میگه پس بروید اگر اون مأموریت بزرگ رو درک کنید خواهید فهمید که منظور اوی نیست که برید و در سر هر چهار راهی کلیسایی بسازید و از مردم دعوت کنید که به کلیسای شما بیان یا علامتی بذارید و بگید ورود همگان آزاده حالا بیایید و اون رو دریافت کنید این چیزی نیست که عیسی گفته عیسی گفته برو عیسی گفته مجدر رو به مردم برسون تو به نزد اونها برو بعضی از ایمانداران معترف به عیسی مسیح هستند که طوری زندگی میکنند انسان فکر میکنه آخرین کلمه ای که ایسا گفته این بوده کسی بفهمه همه اینها رو نزد خودتون نگه داری. این رو پیش کسی بازگو نکنید. این یک فرمان سریه. تا زمانی که اونا نخواستند و از شما نتلبیدن، چیزی رو به اونها نگید. خیلی ها فکر میکنند معمولیت کلیسا این هست. این تفکری کتاب مقدسی نیست. یونس به ما نشون میده که آمدن همیشه به رفتن منجر خواهد شد. یونس کاملا مطمئنه که آمدن او منتهی به رفتن خواهد شد. به این خاطر وقتی او تصمیم میگیره نره، از آمدن هم منصرف میشه. خدا به یونس ماموریت میده که نجات رو برای دشمنانش در شهر نینوا معهزه کنه. یونس از مردم نینوا که دشمنان قومو هستن نفرت داره. بنابراین از اطاعت خدا سرپیچی میکنه و به نینوا نمیره و تصمیم میگیره از حضور خدا فرار کنه. وقتی یونس سعی میکنه از حضور خدا فرار کنه، او رو میبینیم که موجودی شدیدن احساساتی شده. آیا مزمور 139 رو به خاطر دارید اونجا که داوود میگه چندین چیز هست که شما نمیتونید ازش خلاص بشید شما نمیتونید از خودتون فرار کنید بعد البته نمیتونید از حضور خدا فرار کنید او میگه از روح تو کجا بروم از حضور تو کجا بگریزم شما نمیتونید از حضور خدا فرار کنید تا چه ارتفاعی بالا خواهید رفت تا چه عمقی پایین خواهید رفت با چه سرعتی فرار خواهید کرد به چه مسافتی فرار خواهید کرد شما نمیتونید از حضور خدا فرار کنید در باب سوم پیدایش شما تصویر زیبایی از خدا و آدم رو میبینید همان گونه که بود و همان گونه که هست یادتونه در پیدایش باب سه به با اون نگاه کردیم به محض اینکه آدم علیه اراده خدا سرکشی میکنه و اراده خدا رو به جا نمیاره خدا به عنوان کسی که در جستجوی آدم هست تصویر شده خدا از آدم میپرسه کجا هستی؟ چه کسی به تو گفت؟ آیا از میوه درخت ممنوعه خورده ای؟ چیکار کرده ای؟ وقتی پیدایش سه رو بررسی میکردیم گفتم که این باب تصویر زیبایی از این هست که خدا به دنبال انسان میگرده همونطور که اون روز میگشت امروز هم به دنبال انسان میگرده تمامی مذاهب دنیا میتونن اینطور جنبندی بشن انسان در جستجوی خدا اما مکاشفه حقیقت در مسیحیت و یهود اینه. خدا به دنبال انسان میگرده. پیدایش سه به ما میگه که خدا به دنبال آدم میگرده. اما وقتی او رو پیدا میکنه و میپرسه کجا هستی؟ آدم میگه من مخفی شدم. من صدای تو رو میشنوم اما وقتی صدای تو رو میشنوم به خود میلرزم. من میدونم که اوریانی من آشکار خواهد شد و من نمیخوام که آشکار بشه. به این سبب مخفی شدم این جاییه که من هستم این گزارش خدا از طبیعت انسانه. انسان مخفی میشه خدا دنبال انسان میگرده و انسان از خدا مخفی میشه این چیزیه که شما در باب اول کتاب یونس میبینید یونس میخواد از حضور خدا فرار کنه چیه که مردی مثل او میخواد از خدا مخفی کنه چه نشانه هایی رو میخواد از خدا مخفی کنه یک بار وقتی من پیداش سر و همینطور که اینجا توضیح دادم توضیح میدادم روانشناسی به من گفت که این واقعیت طبیعت انسانه به قول اون دوست روانشناس هم این کاریه که اغلب مردم انجام میدن مردم از حقیقت مخفی میشن وقتی یونس نبی رو میبینیم او یقینا از خدا مخفی میشه او از حضور خدا فرار میکنه حالا کسی که از خدا فرار میکنه هرگز نمیخواد که با مردم هم برخوردی داشته باشه او میخواد که گمنام باشه وقتی کسی از خدا فرار میکنه نمیخواد کسی بفهمه که او در زندگی چی کار میکنه معمولا ترجیح میده که از مردم هم مخفی بشه یونس هم این کار میکنه او سوار کشتی میشه که به ترشیش میره که درست در مسیر مخالف نینوا بود و بعد میخونیم که خدا طوفان شدیدی بر اون کشتی و اون نبیی که از خدا فرار میکنه میفرسته بعد میبینیم که خدا ماهی بزرگی میفرسته که اون نبی رو ببلعه وقتی که اراده آزاد رو در کتاب مقدس مطالعه میکنید میتونید به این نتیجه برسید نظریه ای هست که خدا هرگز انسان رو وادار نمیکنه که کاری انجام بده چون خدا به انسان اراده ای آزاد داده خدا به انسان قابلیت تصمیم گیری داده اراده آزاد یکی از جنبه هایی هست که ما به شباهت خدا خلق شده ایم ما از این نظر که میتونیم تصمیم بگیریم شبیه خدا هستیم خدا اراده آزادی رو که به ما داده نقض نمی‌کنه. قابلیت تصمیم گیری ما بود بسیار مهمی از طبیعت انسانی ما هست. اراده آزاد ما برای خدا بسیار اهمیت داره. بنابراین نظر بر این هست که او هرگز ما رو وادار به انجام کاری نمی‌کنه. یکی از تصاویر زیبای استعاریه کتاب مقدس اینه که عیسی مسیح بر در قلب ما ایستاده و در اراده ما رو میکوبه و صبورانه منتظره. او هرگز در رو به زور نمیشکنه. او بیرون در منتظر میمونه. در میزنه و منتظر میشه. قفل در در درون واقع شده. کتاب یونس به ما نشون میده اگر چه خدا ما رو وادار نمیکنه کاری انجام بدیم، اما یقینا میتونه کار جالبی بکنه تا ما آن چیزی رو که او میخواد انجام بدیم. شاید داستان دو مردی که در طی جنگ جهانی دوم بالای کوهی بودند شنیده باشید. بسیاری از مردان کوهستان برای خدمت در ارتش داوطلب شده بودند یکی از مردان گفت شنیدم که دولت میتونه تو رو وادار به جنگ کنه دیگری گفت نه نه اونا نمیتونن تو رو وادار به جنگ کنن اما میتونن این کارو بکنن اونا میتونن تو رو به جایی ببرند که جنگ جریان داره اون وقت تو خودت میتونی وجدان خودت رو به کار بگیری به اعتقاد من کتاب یونس به ما میگه که وقتی خدا میخواد ما کاری انجام بدیم اراده رو واضح برای ما نشون میده بعد از اون ما رو وادار نمیکنه که ارادش رو انجام بدیم اما مانند یک فیل به ما تکیه میکنه تا اینکه انجام اراده او تنها راه معقول و باقی برای ما میشه در کتاب یونس همینطور حاکمیت خدا رو میبینی به این ترتیب هم میتونیم بگیم مسئولیت با خدا هست همه این انبیا خدایی رو که حاکم و مسئول هست موعظه کردند بنا گفته انبیا خدا تحت فشار نیست و سردرگم نیست که چه کاری باید بکنه چون همه چیز در کنترل او هست. خدا نقشهای داره و میدونه که واقعاً چیکار میکنه. تنها چیزی که برای من و شما قابل پذیرش هست اینه که بر اساس اراده و نقشه خدا فرا خوانده شده ای. اگر شما ابتدای حکمت رو فهمیدید از خدا خواهید ترسید و اراده او رو به جا خواهید آورد. خدا همیشه نقشه خودش رو داره. اگر شما جزی از نقشه خدا نشید، بازنده شما هستید، نه خدا. او کس دیگه ای رو پیدا میکنه. همونطور که مردخای به استر گفت، خدا قوم خودش رو نجات خواهد داد. از کجا میدونی که برای چونین روزی وارد این پادشاهی نشدی. اما اگر تو قوم خدا رو نجات ندی، خدا قوم خودش رو نجات خواهد داد. خدا هرگز کنترلش رو از دست نمیده، چون او خدای حاکمه. ملاحظه کنید که خدا چطور شرایط یونس رو در زندگی کنترل میکنه می بینیم که طوفان بزرگی میفرسته بعد ماهی بزرگی میفرسته که یونس رو ببلعه بعدها خدا چیزهای دیگری برای یونس میفرسته چون میخواد یونس اراده خدا رو ببینه و به جا بیاره کسی که از خدا پنهان میشه به روش های مختلف از خدا پنهان میشه شاید با کار کردن زیاد پشت کارش مخفی بشه شاید زیاد بازی کنه یا زیاد بخوره بیش از حد مشروب بخوره کسی که از خدا فرار میکنه زیاد هم میخوابه کسی که از خدا فرار میکنه به 15 ساعت خواب در روز نیاز داره او هرگز از خواب سیر نمیشه چون از خدا مخفی میشه او نمیخواد با خدا مواجه بشه نمیخواد با زندگی مواجه بشه ترجیح میده بخوابه تا زندگیش بگذره کسی که مخفی میشه غالبا اوقات به طرز غیرمعمولی میخوابه وقتی خدا اون طوفان بزرگ رو فرستاد در حالی که همه در کشتی مشغول دعا کردن نزد خدایان خود بودند، یونس به انبار کشتی رفته بود و به خواب عمیقی فرو رفته بود. تمام سرنشینان کشتی به خاطر طوفان وحشت کرده بودن. ناخدای کشتی پایین میره و سر یونس داد میزنه الان چه وقت خوابه؟ چطور کسی میتونه در چنین وضعیتی بخوابه؟ خب کسی که از خدا مخفی میشه میتونه تقریبا در هر جایی و هر زمانی بخوابه کسی که فکر میکنه میتونه از خدا مخفی بشه، احتمالا این فکر رو میکنه که میتونه از طوفان هم مخفی بشه. ملوانان وحشت زده و فرمانده کشتی سر یونس فریاد زدند تو کی هستی، اهل کجا هستی، چه مذهبی داری، شغلت چیه؟ و یونس اینجا شهادت ایمانش رو میده و میگه من خدایی رو میپرستم که خالق دریاست و او از من عصبانیه. ملوانان به دریای خروشان نگاه کردند و سر یونس داد زدند. خب نزد خدای خودت که دریا رو خلق کرده دعا کن و یونس میگه خدا از دست من عصبانیه خدا به من گفته به نینوا برم و من به او گفتم نخواهم رفت این طوفان به خاطر نافاتیعی منه ملوانان به شدت نگران بودند و بالاخره میگن خب حالا باید چیکار کنیم تا خدای تو که دریاها رو ساخته آروم بشه یونس جواب میده منو پایین بندازید منو توی دریا بندازید و خدای من راضی خواهد شد ملوانان و فرمانده برای نجات کشتی سعی می اما می که در نبردی نابرابر شکست می خورن. اونها می گن خدا خودش میدونه دونه که چرا این کار با تو کرده ما باید به فکر خودمون باشیم اگه تو نتونی خودت رو نجات بدی کس دیگه ای رو هم نمیتونی نجات بدی پس یونس رو به دریا می اندازن. به محض اینکه که یونس به دریا انداخته میشه شه دریای خروشان آروم میشه. دریا یا آرام از اون ملوانان بت افرادی ایماندار می سازه. این واقعیت رو ندیده نگیرید که یونس خواه نخواه یک مبشر بود حتی زمانی که از خدا فرار میکنه خدا از او استفاده میکنه که با ملوانان کشتی در حال غرق صحبت کنه وقتی اون ملوانان وحشت زده یونس رو به دریا میندازند و دریا آروم میشه اونها ایمان میارن ملوانان برای خدا قربانی می و نام یهوه را میخونن در پایان باب یک کتاب یونس او به دریا انداخته میشه خدا چیز دیگه ای به غیر از طوفان مهیا کرده خدا ماهی بزرگی آماده کرده که یونس رو ببله ماهی بزرگ موجزه خاصی بود ملاحظه کنید که این ماهی بزرگ هرگز نهنگ خونده نشده فقط یک ماهی بزرگ بود این ماهی خاصی بود که به این منظور خاص خلق شده بود ما میخونیم که یونس به مدت سه شبان روز در شکم اون ماهی بود حالا میخوام به شما تکلیفی بدم که بتونید قبل از پایان جلسه تموم کنید همونطور که قبلا اشاره کردم میتونید بالای فصل یک کتاب یونس بنویسید من نخواهم رفت میدونید چه چیزی میتونید بالای باب دو بنویسید دو کلمه انجام میدم سه بار در باب دو یونس میگه انجام میدم انجام میدم انجام میدم, انجام میدم. همینطور در باب دو کتاب یونس ملاحظه کنید که یونس در شکم ماهی می میکنه. حالا تجسم کنید که در شکم اون ماهی بزرگ چه احساسی داشته. تجسم کنید که چه شکلی بوده، چه بویی میداده. فقط عملا به این فکر کنید که بودن در شکم ماهی چه احساسی داره. خدا سعی میکنه که نبی خودش رو قانع کنه که برای دشمنانش معوذه کنه و نبی میگه نه. شما چقدر میتونید توی شکم یک ماهی دووم بیارید تا بگید بله؟ یونس سه شبانه روز در شکم ماهی بزرگ بود و بعد از اون گفت انجام میدم بعد خدا با ماهی بزرگ صحبت میکنه و او یونس رو در ساحل قایم میکنه حالا تکلیف شما اینه نگاه کنید ببینید چند بار یونس در شکم ماهی کلام خدا رو ذکر میکنه در حالی که باب دو رو میخونید چیز دیگه ای که باید ملاحظه کنید اینه یونس در شکم ماهی سرود میخونه اگر شما در کتاب مقدسی که باب دوی یونس رو میخونید زیرنویس هایی دارید نگاه کنید ببینید او در این باب از چند مزمور استفاده کرده شما به این نتیجه خواهید رسید که این مرد در شکم ماهی واقعا دعا و پرستش میکرده یونس هر سرودی که به ذهنش می اومد میخوند هر دعایی که به فکرش میرسید میکرد و هر آیه ای که به خاطرش می اومد ذکر میکرد خدا به اراده آزاد یونس در تمام مدتی که در شکم ماهی بود اهمیت میداد به طور خلاصه شما میتونید بالای باب یک کتاب یونس بنویسید یونس نمیره و یونس نمیاد و میتونید بالای باب دوی کتاب بنویسید یونس میآید یونس به حضور خدا می آید؟ ببینید آیا میتونید بفهمید یونس در باب دو چطور کاملا به حضور خدا میاد آیا خودتون رو در اون داستان میبینید خاندگی شما چیه؟ آیا از خدا فرار می کنید؟ خدا چه چیزی باید بفرسته تا شما رو وادار به اطاعت از ارادهش بکنه؟ اینها کاربورتای عملی این کتاب خارقلاده هستند. تا دیدار بعدی شما را به خدا می سپاریم. دانشویان عزیز، امیدوارم وقتی خاندگی خدا رو میشنوید که پیام فیز و نجات او رو با دیگران درمیون بذارید، مانند یونس نباشید که به مسیر ای برید. محبت خدا رو با همه درمیون بذارید. امیدواریم که همه این درس ها شما رو در ایمانتون تقویت کنه تا محبت خدا رو سمیمانه تر و عمیقا درک کنید تا اینکه اون رو تماماً با دیگران درمیون بذارید. تا برنامه بعدی امیدواریم آرامش رو تجربه کنید.